آن کس که به جملگی تو را تکه بروست، گر چشم خرد باز کنی دشمن دشمنتوست، آن به که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل زمانه صحبت از دور نکوست. ای بی خبر این مجسم هیچ است، بین تارم نحس پهره هرقم هیچ است، خوش باش که در نشیمن کون و فساد، با بسته یک دمی و آن هم هیچ است. با مطرب و میهور سرشتی هست، با آب روان کنار کشتی هست، بهزین مطلب دوزخ پرسوده متاب، حقا که جزی نیست بهشتیگر هست. پیریز خرابات برون آمد و مست، سجاده به دوش و کاسه باده به دست، گفتم شیخ آترا چه حال آمد پیش، می خور که کار عالم باده است.